نزدیک به دهمای از ورود من و بابی به هتل ریتز گذشته بود که یک هفته در ماه مه 1939 تو یکی از روزنامه های کبک یعنی یکی از 16 روزنامه و مجله فرانسوی زبان که برای اشتراکشان پول بی زبانم را دور می‌ریختم، به یک آگهی رو به ستونی برخوردم که مدیر یک مدرسه هنری مکاتبهای مونترال سفارش چاپش را داده بود. توی آگهی از همه مربیان واجد شرایط دعوت شده بود که برای استخدام در جدیدترین و پیشرفته ترین مدرسه هنری مکاتبهی کانادا درخواست بنویسند در عین حال اضافه شده بود که زیاد هم اشتیاق نشان ندهند شرایط داوطلبان دانستن کامل دو زبان فرانسوی و انگلیسی بود و تنها کسانی که خرقخوی ملایم و شخصیتی مسمم داشتند می توانستند درخواست استخدام کنند دوره تابستانی مدرسه دوستاران استادان دیرین قرار بود به طور رسمی در روز دهم ده ماه ژوئن گشایش یابد در آگهی آمده بود که نمونه آثار هنری باید هم دارای ارزش دانشگاهی باشد و هم ارزش تجاری و به آقای تا مدیر مدرسه عضو سابق آکادمی سلطنتی هنرهای زیبای توکیو تقدیم شود من که حس می کردم تا حدودی از شرایط لازم برخوردارم بیدرنگ ماشین تحریر هرمز بیبی بابی را از زیر تختش بیرون آوردم. فکر رفتم به سر کلاس های صبح مدرسه خیابان لکسینگتن را سر بیرون کردم و نامه بالا بلند جانانهای به فرانسه به آقای یوشوتو نوشتم. بند اول نامه که به سه صفحه می رسید خیلی محشر از درآمد. نوشتم که بیست سال دارم و نوه هنار دومی هستم نوشتم که به تازگی از ملک کوچک پدری خود در جنوب فرانسه به دنبال مرگ همسرم راهی آمریکا شدم تا به طور موقت این موضوع را رو روشن کردم با یکی از خویشان علیل خود زندگی کنم نوشتم که نقاشیر از دوران کودکی شروع کردهام. اما بناب نصیحت پابلو پیکاسو که یکی از صمی و عزیزترین دوستان پدر و مادرم بود هیچگاه نمایشگاهی دایر نکردهام. اما چند تا از نقاشی های رنگ و روغن و آبرنگ من همکنون از دیوار چند تا از زیباترین خانه های فرانسوی که به هیچ وجه از آن تازه به دوران رسیده ها نیست آویزان است و توجه چند تن از منتقدان برجسته روزگار ما را سخت به خود جلب کرده است. به دنبال آن نوشتم که پس از مرگ نابهنگام و قمنگیز همسرم که در نتیجه قده سرطانی پیش آمد، به طور جدی تصمیم گرفته بودم که هیچگاه قلمو به دست نگیرم. اما زیانهای مالی اخیر سبب شده که تصمیم پا بر جای خود را کنار بگذارم. نوشتم بسیار مفتخر می که همین که نمونه های کارهایم از طرف واسطه فروش آثارم در پاریس که البته بیدرنگ نامهی به او خواهم نوشت به دستم برسد آنها را به مدرسه دوستاران و استادان دیرین تقدیم کنم. و در پایان نوشتم با شایسته ترین احترامات و امضا کردم جان دو دومی اسمیت انتخاب نام مستعار درست به اندازه نوشتن نام وقتم را گرفت نام را رو رو روی کاغذ شفاف نقاشی نوشتم اما توی پاکت مخصوص هتل ریتز گذاشتم سپس بعد از چسباندن تمر سفارشی مخصوصی که در کشوی بالایی بابی پیدا کردم پاکت را دست گرفتم و به سوی صندوق اصلی پست سالون هتل به راه افتادم. در سر راه ایستادم تا به مسئول نامه که خبر داشتم دلش نمیخواست سر بتنم باشد، سفارش کنم که گوش به زنگ نامه هایی باشد که در آینده برای دو دومیه اسمیت میرسد. سپس نزدیکی های ساعت دو نیم به آرامی خودم را توی کلاس تشریح ساعت یک و 45 دقیقه مدرسه خیابان چلو هشتون گذاشتم. برای اولین بار به نظرم رسید که هم آدمهایی هایم آدم های نسبتاً دوست داشتنی هند. چهار روز بعد را در همه وقتهای فراغت و غیر فراغت به کشیدن دوازده سیزده تابلوی نقاشی گذراندم که فکر می کردم نمونه های نوعی هنر تجاری امریکاست. بیشتر با آبرنگ رقیق کار کردم و گهگاه برای آنکه که خودی نشان بدهم آدمهایی کشیدم که لباس شب بتن کرده بودند. و در شب افتتاح محلی از اتومبیل لیموزینشان پیاده میشدند. اینها زوجهای لاغرندام شق و رق و بسیار خوش‌پوشی بودند که ظاهرشان نشان می‌داد که در همه عمر هیچگاه عطر ضد بوی زیر بغل خود را فراموش نکردند. زوجهایی که در حقیقت احتمالاً عضوی به اسم زیر بغل نداشتند جوانان قول‌پیکر برنزه شده‌ای کشیدم که نیم‌تنه سفید مهمانی پوشیده بودند و پشت میزهای سفید نشسته بودند که کنار استخر روز رنگ چیده شده بود. و نسبتا با هیجان لیوانهای سودا و ویسکی چاودار ارزان اما به ظاهر سطح بالای خود را به سلامتی یک دیگر سر میکشیدند. کنار آنها بچه های گلگون چهره و زیبایی کشیدم که شاد و شنگول ظرفهای صبحانه خود را بلند کرده بودند و با خوشخلقی درخواست میکردند که باز هم میخواهند دخترهای خندان خوش ای کشیدم که بی خیال به مسائل دنیا مشغول اسکی روی آب بودند چون آگهیهای بازرگانی آنها را در برابر آفتهای محلی مثل خونریزی ریزی لسه، بیماری های چهره موهای زشت و بیمه های عمر قلابی و غیر مجاز در پناه گرفته بودند کتبانوهایی کشیدم که موهایشان پریشان بود اندامشان از ریخت افتاده بود از تربیت بچه هایشان باز مانده بودند. فریاد شوهرانشان به آسمان رسیده بود. دست های زبر اما ظریفی پیدا کرده بودند. آشپزخانه های کسیف اما بزرگی داشتند. با این همه دستشان را دراز کرده بودند و سابون هایی برمی داشتند که همه جا تبلیغ شده بود. نمونه ها را تمام کردم و آنها را همراه شش شفت نقاشی غیر تجاری، که از فرانسه آورده بودم بیدرنگ با پست برای آقای یوشاتا فرستادم همراه آنها یاد داشتی هم فرستادم که به خیال خودم سرسری بود و به شیوه عمیقا رمانتیک در آن شهر داده بودم که چطور به تنهایی و با تحمل چه سختی ها توانستم به قله پیروزی هرفمند از پیدا کنم دو سه روز بعد را با دلهوره گذراندم اما پیش از اینکه روزهای هفته به آخر برسد نامی از آقای یوشوتا به دستم رسید که در آن مرا به عنوان مربی مدرسه دوستداران و استادان دیرین پذیرفته بود. نامه به انگلیسی بود هرچند من نامم را به فرانسوی نوشته بودم. بعدها دستگیرم شد که آقای یوشوتا که فرانسه میدانست نه انگلیسی به دلیل های نوشتن نامه را به خانم یوشوتا که دستی در زبان انگلیسی داشت وا کرده بود. آقای یوشوتا نوشته بود که دوره تابستانی احتمالاً شلوخ ترین دوره سال است و از چه مژه شروع می شود و تذکر داده بود که به همین سبب تقریبا پنج هفته فرصت دارم که کارهایم را راستاریز کنم و همدردی دردی عمیق خود را نسبت به ناراحتی‌های مالی و روحی من ابراز کرده بود اظهار امیدواری کرده بود که ترتیب کارها را طوری بدهم که در روز یکشنبه بیست و سوم ژوئن در مدرسه دوستداران استادان دیرین حاضر باشم تا با کم و کیف وظایفم آشنا شوم و با مربیان دیگر که بعدها پی بردم دو نفرند و از خانم آقای یوشتا تشکیل میشوند دوست ثابت قدم بشوم. همچنین تأسف امیغ خود را از اینکه پیش پرداخت هزینه نقل و انتقال مربیان جدید از وظایف مدرسه نیز بیان کرده بود. حقوق از آغاز کار هفته بیست و هشت دلار بود و آقای یوشتا تصدیق کرده بود که این مبلغ خیلی زیاد نیست اما از آنجا که حس می به یقین در من روحی یه حرفی وجود دارد، اظهار امیدواری کرده بود که خود را نبازم. نوشته بود که با اشتیاق منتظر رسیدن تلگرامی از جانب من است که در آن به طور رسمی پذیرش خود را اعلام کرده باشم و از ته دل برای ورودم لحظه شماری می کند. و در پایان با احترام خود را دوست جدید و کار من دانسته بود و امضا کرده بود یه یوشتو، عضو سابق آکادمی سلطنتی هنرهای زیبایی توکیو تلگرام پذیرش رسمی خود را در پنج دقیقه فرستادم نکته غریب این بود که از آنجا که دچار هیجان بودم یا احتمالاً از آنجا که از تلفن بابی برای سفارش تلگراف استفاده میکردم و خود را گناهكار میشمردم پیغام را به ام درس گرفتم و سر و آن را با ده کلمه به هم آوردم